اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین به نام خدا بند بخشنده بخشایشگر تا سین، این آیات قرآن و کتاب مبین است. خدا و بشرال المؤمنین وسیله هدایت و بشارت برای مؤمنان است.الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرهٔ هم ميوقنون. هم هم همان کسانی که نماز را برپا پا می‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و آنان به آخرت یقین دارند إن الذین لا يؤمنون بالآخرة زین لهم أعمالهم زین لهم اعمالهم فهم یعمون کسانی که به آخرت ایمان ندارند اعمال بدشان را برای آنان زینت می دهیم به طوری که سرگردان می شوند وهم هم, في الاخرة هم, في هم آنان کسانی هستند که عذاب بد و دردناک برای آنهاست و آنها در آخرت زیانکار ترین و این من لد حکیم علیم به یقین این قرآن از سوی حکیم و دانایی بر تو القا می شود اذ قال موسی لی اهلهی آنست نارا سآتی سآتیکن منها بخبر او آتیکن بشهاب او آتیکن بشهاب قبس لعلكم تستلون به خاطر هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی از دور دیدم همینجا توقف کنید به زودی خبری از آن برای شما میآورم یا شعله آتشی تا گرم شوید. فلما جاءنود يا من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين هنگامی که نزد آتش آمد ندایی برخواست که مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است یا موسی الله العزيز الحکیم ای موسی من خداوند عزیز و حکیمم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْهُ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ وَعَصَايَ رَأَيْتَ بِيَمِينِكَ هنگامی که موسا به آن نگاه کرد، دید با سرعت همچون ماری به هر سو می بده، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد. ای موسا، نترس که رسولان در نزد من نمیترسن. اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِیم مگر کسی که ستم کند سپس بدی را به نیکی تبدیل نماغید که توبه او را میپذیرم و من آمور مهربانم و ادخل يدك في جيبك تخرج بیضاء من غیر سوء في تسع آیات إلى فرعون وقومه قومه إنهم كانوا قوما فاسقين و دستت را در گریبانت داخل کند هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است بیان که عیبی آن باشد این در زمره معجزات نهگان است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می‌شوی آنان قومی فاسق و طغیانگرند فلما جاءتهم آیاتنا مبصره قالوا قالوا قالو هذا سحر مبین و هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند این سهریست آشکار و جحدو بها و استیقنتها انفسهم ظلما و فانظر کیف كان عاقبت المفسدین و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند در حالی که در دل به آن یقین داشتند اسپینگر سرانجام تبع و مفسدان چگونه بود؟ ولقد آتينا داوود و علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير على كثير من عباده المؤمنين. و ما به داوود و سليمان دانشی عزیم دادیم و آنان گفتند. ستایش ازان است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید و ورث سلیمان داود وقال يا ایوه الناس علمنا منطق الطير و اوتینا, و اوتینا من كل شیئ إن هذا لهو الفضل المبین و سلیمان وارس داوود شد و گفت ای مردم زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر چیز به ما عطا گردیده این فضیلت آشکاریست و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند آنقدر زیاد بودند که باید توقف می کردند تا به هم ملحق شوند. حتی اذا اتو علا واد نملی قالت قالت نملتون یا ایوهن نملو دخلو مساکینکم لا یحطمنکم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون آنها حرکت کردند تا به سرزمین مورچگان رسیدند مورچه ای گفت به لانه های خود بروید تا سلیمان و از شما را پایمال نکنند در حالی که نمی فهمند فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان از سخن او تبسمی کرد و خندید و گفت پربردگارا. شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن وتفقد سلیمان در جستجوی آن پرنده برآمد و گفت چرا هدهد را نمی بینم یا اینکه او از غایبان است لأعذبنه عذابا شدیدا اول لأذبحنه اول اذبحنه اول یأتینی بسلطان مبین قطعاً او را کیفر شدیدی خواهم داد یا او را زبه می کنم مگر آنکه دلیل روشنی برای غیبتش برای من بیاورد فمكث غير غیر بعید فقال احط بما لم تحط به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 انني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها ولها عرش عظیم من زنی را دیدم که بر آنان حکومت میکند و همه چیز در اختیار دارد و به خصوص تخت عظیمی دارد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عنی السبیل فهم لا یهددون او و قومش را دیدم که برای غیر خدا خورشید سجده میکنند. و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده و آنها را از راه باز داشته از این رو هدایت نمی شوند الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنوا چرا برای خداوندی سجده نمیکنند که آنچرا در آسمان ها و زمین پنهان است خارج و آشکار میسازد و را پنهان میدارید یا آشکار میکنید میداند الله لا اله الا هو رب العرش العظیم خداوندی که معبودی جز او نیست و پروردگار عرش عظیم است. قال سننذر اصدقتم ام كنتم من الكاذبين سلیمان گفت ما تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی یا از دروغ گویان هستی؟ از هم بی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم این نامه مرا ببر و بر آنان کن سپس برگرد و در گوش ای توقف کن ببین آنها چه اکس عملی نشان می دهند طالته یا ایها الملأ ان انقي الى كتاب كريم ملکه سبا گفت ای اشراف نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده اینه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم این نامه از سليمان است و چنین است به نام خداوند بخشنده مهربان <اللا تعلو علي وقتوني مسلمين> توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من آئید در حالی که تسلیم حق هستید قالت يا ما كنت قاطعتاً امراً حتی تشهدون سپس گفت ای اشراف نظر خود را در این امر مهم به من بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام ندادم قالوا نحن اولو قوت و الو بأس شدید و الامر الیک. والأمر إلیك فانظری ماذا تأمرین گفتند ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم ولی تصمیم نهایی با توست ببین چه دستور می دهی. قالت إن الملوك اذا دخلوا قریة افسدوها افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك یفعلون گفت پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد و تباهی میکشند و عزیزان آنجا را ذلیل میکنند. آری کار آنان همین گونه است و اني مرسله اليهم بهديه فناظره فناظره بما يرجع المرسلون و من اكنون جنگ را صلاح نميبينم هدیه گرانبهای برای آنان میفرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر میآورند و از این طریق آنها را بیازمایم فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَال قَالَ اَتُمِدْ دُونَنِ فَمَا آتَا اللَّهُ خَيْرٌ مِن مَا آتاكم بَلْ أَنتُم تَفْرَحُونَ هنگامی که فرستادی ملکه سبا نزد سلیمان آمد گفت میخواهید مرا با مال کمک کنید و فرید دهید؟ آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است بلکه شما هستید که به حدیه هایتان خوشحال میشوید ارجع إليهم فلنأتینهم بجنود الله قبل لهم بها و منها اذلت و صاغرون به سوی آنان بازگرد و اعلام کن با لشکریانی به سراغ آنان می که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنان را از آن سرزمین آباد با ذلت و خاری بیرون میرانیم. قال يا ايها المرء انيكم ياتيني بعروس يا قبل ان ياتوني مسلمين سليمان گفت اي بزرگان کدام یک از شما تخت او را برای من میآورد آورد پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من آیند قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانني عليه لقوي امين افريت از جن گفت من آن را نزد تو میآورم پیش از آنکه از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر توانا و امینم قال الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرٌّ وَالنِّعْدَهُ قَالَ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ام ربی غنی اما کسی که دانشی از کتاب آسمانی داشت گفته پیش از آن که چشم بر همزنی آن را نزد تو ها هم آورد و هنگامی که سلیمان آن تخت را نزد خود ثابت و پا برجا دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا می آورم یا کفران میکنم و هر کس شکر کند به نفع خود شکر میکند و هر کس کفران نماید به زیان خیش نموده است که پروردگار من غنی و کریم است قال نكّر لها عرشانا انظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون سليمان گفت تخت او را برایش ناشناس سازید. ببینیم آیا متوجه می شود یا از کسانی است که هدایت نخواهند شد فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَهَا كَذَا عَرُشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُوهُ وَاُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ هنگامی که آمد به او گفته شد آیا تخت تو این گونه است؟ گفت گویا خود آن است و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرین و او را آنچه غیر از خدا میپرستید بازداشت که او ملكهٔ سبا از قوم کافران بود قیل له ادخل الصرح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 به او گفته شد داخل حیات قصر شد هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد اما سلیمان گفت این آب نیست بلکه قصر است از بلور صاف ملکه سبا گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خدابندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم ولقد رسلن ال ثمود خاهم صالحا اناعبدو الله فاذا هم, فا هم فریقان یختصمون ما به سوی سمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستیم اما آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند. وقال يا قوم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح گفت ای قوم من چرا برای بدی قبل از نیکی عجله میکنید چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمیکنید تا شاید مشمول رحمت او شوید. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون آنها گفتند ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم صالح گفت نیک و بد شما نزد خداست بلکه شما گروهی هستید فریب خورده و کان فی ولا شهر نه گروهک بودند که در زمین فساد میکردند و اصلاح نمیکردند. قالوا تقاسموا بالله لبيتا له واهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليهما شاهدنا مهلك اهلي واننا لصادقون آنها گفتند به قسم یاد کنید به خدا که بر او و خانواده اش شبیخون میزنیم و آنها را به قتل می رسانیم. سپس به ولی دم او می گوییم ما هرگز از حلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم. و مکرون, مکرون و مکرنا مکرون و هم لا آنها نقشه مهمی کشیدند و ما هم نقشه مهمی در حالی که آنها درک نمی کردند. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان لا دمرناهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين بنگرد عاقبت توت آنها چه شد که ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ این خانهای آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده و در این نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند و أن الذين آمنوا وكانوا و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیش کرده بودند نجات دادیم و لوطن اذ قال لقومی اتعتون الفاخشت و انتم و لوت را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا شما به سراغ کار بسیار زشتی میروید در حالی که نتایج شوم آن را می أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون آیا شما بهجای زنان از روی شهوت به سراغ مردان میروید شما قومی نادانید جواب مِنْ آنها پاسخی جز این نداشتند که یک دیگر گفتند. خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها افرادی پاک دامن هستند. فاجینا هو اهله الا امراهه قدرناها الا امراهه قدرناها من الغابرين ما او و خانواده را نجات دادیم به جز همسرش که مقدر کردیم جزء باقی ماندگان باشد. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ سپس بارانی از سنگ بستر آنها باراندیم و همگی زیر آن مدفون شدند و چه بد است باران انذار شدگان قل الحمد لله و على علی عباده الذین اصطفوا <الله خیرٌ اما يشرقون> بگو همد مخصوص خداست و سلام بر بندگان برگزیده آیا خداوند بهتر است یا بت‌هایی که همتای او قرار میدهند؟ اَنْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَئِلَهُمْ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ آیا بودخایی که معبود شما هستند بهترند یا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغهایی زیبا و سرورانگیز رویاندیم شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید آیا معبود دیگری با خداست؟ نه بلکه آنها گروهی هستند که از روی نادانی مخلوقات را همتراز پروردگارشان قرار میدهند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 بل اکثرهم لا يعلمون. یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد و میان آن نهرهایی روان ساخت و برای آن کوههای ثابت و پابرجا ایجاد کرد و میان دو دریا مانعی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند با این حال آیا معبودی با خداست؟ نه بلك بیشتر آنان نمیدانند ان من يجيب المضطر اذا دعاه هو يكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الارض الالههم مع الله قليلا ما تذكرون یا کسی که دعای مزتر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف میسازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد. آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر میشوید؟ شوید ام من یهدیکم ظلمات البر والبحر و من یرسل الریاح و من یرسل الریاح مشرا بین ید رحمته ایله مع الله تعالى الله عمبای شرکون یا <وزنجز> کسی که شما را در تاریکی های سهراب و دریا هدایت می کند و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش میفرستد آیا معبودی با خداست؟ خداوند برتر است از آنچه برای او شریک قرار میدهند آمی بدأ الخلق ثم يعيده ومن مي يرزقكم و من السماء والأرض اِلَهُم مع الله الهات این یا کسی که آفرینش را آغاز کرده سپس آن را تجدید می کند و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد. آیا معبودی با خداست؟ بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست می قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بگو کسانی که در آسمانها و زمین هستند، غیب نمی‌دانند، جز خدا و نمی‌دانند کی برانگیخته می‌شوند. للداره علمهم في الاخره بل هم في شك منها بلهم هم منها عمون آنها مشرکان اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند بلکه در اصل آن شک دارند بلکه نسبت به آن نابینایند و قالا الذي ك و, ا انا ا انا و هندامی که ما و پدرانمان خاک شدیم زنده میشویم و از دل خاک بیرون میآیم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا ان هذا الا اساطير این وعده است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده اینها همان افسانه های خرافی پیشینیان است قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين بگو در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید ولا تحزن علیهم مما يمكرون. از تکذیب و انکار آنان غمگین مباش و سینعت از توطعه آنان تنگ نشود و یکونون متى هاد الوعد این کنتم صادقین آنها میگویند این وعده عذاب که به ما می دهید کی خواهد آمد اگر راست میگویید گویید قل عسا این یکون ردی فلکن بعض الذی تستعجلون بگو شاید پارعی از آن چه درباره آن شتاب می کنید. نزدیک و در کنار شما باشد و این ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا يشکرون مسلما پروردگار تو نسبت به مردم فضل و رحمت دارد ولی بیشترشان شکل گذار نیستند ربك ليعلم ما صدورهم وما و, و پروردگارت آنچرا آنچه را در سنه هایشان پنهان میدارند و آنچه را آشکار میکنند به خوبی می داند و ما من غائبتیم في السماء والأرض إلا. إلا في كتاب مبين. و هیچ موجود پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر این که در کتاب مبین در لوح محفوظ و علم بی پایان پروردگار ست است إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. این قرآن، اكثر چیز های راکب بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند، برای آنان بیان می کند. و ورحمة له و للمؤمنين و مایه هدایت و رحمت برای مؤمنان است این ربک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می و اوست قادر دانا فتوکل الله انك على الحق المبين پس بر خدا توکل کن که تو بر حق آشکار هستی انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا اذا ولوا مسلما تو نميتواني سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمیتوانی قرآن را هنگامی که روی برمیگردانند و پشت میکنند فراخامی. و ما انت به هذه العم عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون و نیز نمیتوانی قرآن را از گمراهیشان برهانی تو فقط میتوانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمند و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تو کلمهم ان لا سکانو لا یوقنون که فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخیز قرار گیرند جنبنده ایران از زمین برای آنها خارج می‌کنیم که با آنان تکلم می‌کند و می‌گوید که مردم به آیات ما ایمان نمی‌آوردند و یوم نحشر من کل امت فوجا من من من من یکذب بی آیاتنا فهم یوزعون به خاطر روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکزید می کردند محشور می کنیم و آنها را نگه می داریم تا به یک دیگر مرحق شدند حتی اذا جاؤو قال اکذبتم بی ولم تحیطو بها ولم تحیطو بها علما اما زا کنتم تعملون تا زمانی که به پای حساب می آیند به آنان می گوید آیا آیات مرا تکذیب کردید و در صدد تحقیق بر نیامدید؟ شما چه اعمالی انجام میدادید؟ و وقع القول عليهم بما ظلمو فهم لا در این هنگام فرمان عذاب به خاطر ظلمشان بر آنها می شود و آنها سخنی ندارند که بگویند الَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ <تصفيق> وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش در این امور نشانه‌های روشنی است برای کسانی که ایمان می‌آبرند. ویومیوم فخ في الصور ففزعمان في السماوات ففزعمان في السماوات ومان في الأرض إلا إلا ما شاء الله وكل أتوه داخلين. وباخاطر آورید. روزی را که در سور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند در وحشت فرو می روند جز کسانی که خدا خواسته و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند. و تر الجبال تحسبها جامدت و والسحاب صن الله الذي اثقل كل شيء انه خبير بما تفعلون کوخارا میبینی و آنها را ساکن و جامد میپنداری در حالی که مانند ابر در حرکتند این سنع و آفرینش خداوند است که همه چیز را متقن آفریده او از کارهایی که شما انجام میدهید مسلما آگاه هست من جاء خیر منها و من کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند. و من جاء بالسیئت فکبت فِي النَّارِ فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون و آنها که اعمال بدی انجام دهند به صورت در آتش افکنده میشوند. آیا جزایی جز آنچه چه عمل می خواهید داشت؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء وامرت أن اكون من المسلمين بگو من مامورم پروردگار این شهر مقدس مکه را عبادت کنم همان کسی که این شهر را حرمت بخشیده در حالی که همه چیز از آن اوست و من مأمورم که از مسلمین باشم و ان اتلو القرآن القران فمالهتدا فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين و انك قرآن را تلاوت کنم هرکس هدایت شود به سود خود هدایت شده و هرکس گمراه گردد بگو من فقط از انظار کنندگانم و قل الحمد لله سیوریکم فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بگو همد و ستایش مخصوص ذات خداست به زودی آیاتش را به شما نشان می دهد تا آن را بشناسید و پروردگار تو از آنکه انجام می دهید آفل نیست.